حکایت توانگر ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچهی مناظره درپی بسته که صندوق تربت ما سنگین است و کتاب رنگین و فرش رخام انداخته و خشت پیروزه در او به کار برده به گور پدرت چه ماند؟ خشتی دو فراهم هم آورده. و دو خاک بر آن پاشیده درویش پسر این بشنید و گفت تا پدرت زیر آن سنگهای گران بر خود بجنبیده باشد پدر من به بهشت رسیده بود خر که کمتر نهند بر بی بار سودتر کند رفتار مرد درویش که بار ستم فاقی کشید، به در مرگ همانا که سبکبار آید. وان که در نعمت و آسایش و آسانی زیست، مردنش زین همه شک نیست که دشخار آید، به همه حال اسیری که زبندی برهد، بهتر از حال امیری که گرفتار آید.